گفتش که ببنه او اعره ما که از قد اجریه وقت تر بنا مطلوب به فیل دنیا گفت مبنی کن یا مغرب اون چیزی رو که شبیه عز است یعنی مشبه از مشبه از را مبنی کن یا مغرب کن اما این اختیار رو ما بهت گفتیم ولی نظر خود ما اینه وقت تر مطلب به فعل بنیاد ولی نظر ما اینه که اگر قبل از این مشبهه از بعد از این مشبهه از چیزی آمد که نیست، شما مشبهه از رو هم مبنی کنی اختیار بهتر است وقت تر یعنی ترجیح بده مبنی کردن مطلب یعنی واقع قبل فعل اونی که واقع شده قبل از فعل مبنی که فعل مبنی مثل مازی که گفتیم ال الهنناس جل جلو اموره فندلن زور ای غلمان سوالی سالبی که گفتیم الاهینه الاهینه دو جور قراعت شده و الاهینه از نظرشون افسه است. و گفتیم متعلق به یه یجری نمنداری بجرن حقائبی یعنی بجرن حقائب و هم بعد یک شعر هم برای مزاره مفلیمان سال زدیم من منهن قلبی تحلمن یعنی متحلمن بهتر است از, از این که مفلول الله گرفته بشند در منابه الاهینا الاهینا که گفتیم الاهینا به در از شون فعل بعد یستسبینا کلا حالی حالا والواقع، ولواقع قبل فعل معرب میگه و قبل فعل معرب او مبتدا اعرف و من بنا فلن یوفن ندا و من بنا فلن یوفن ندا میگم خب حالا فعل مبنی اگر بعدش میامد تو گفتی نظر من اینه که مبنی بخونی چیه؟ بهتره, بهتره. موربم پس میشه اما به اندازه بنا نظر تو ارزش. حالا اگر بعدش یه موقع فعل مورب اومد مثل فعل مزارب یا مبتدا اومد خب او اونجا چه کنیم؟ میگه خب اونجا هم نظرم اینه که چه کارش کن؟ محرش کن یعنی الان اگر به جای یستس بی نبود یستس بی سیغه اول بود مگفتیم چی؟ چجور بخون؟ یا تستس بی مگفتیم چطور بخون؟ الاهینه بخون افسره هست و قبل وابا واتفه این قبلا متعلق مون اعرب اول دو اسراء 2 بود. اعرب بده فعل و باء و ما که و ما که که بوده چی شده؟ حذف یعنی اعرب ما که اسم بده اون که مثل اذن قبل فعل امره اعراب بده قبل از فعل مورب قبلا متعلق است به اضافه شده به فعل مورب هم صفتش او مبتدا این عطف به جای فعل است یا قبلا مبتدا و من بنا فلن یفندجا این من احتمال داره شرط باشه احتمال داره موصوله باشه اگر من شرطیه باشه فای فلن میشه فای جزا اگه من شرطیه باشه اگر من موزوره باشه مثل لذیر یه اتینی فرهودر هم فام شفای شفای شفای جزا فایه شفای جزا تو کتاب سمنیه و من بنا و هر کسی که مبنی کند یا کسی که مبنی کند هر کسی یا کسی شرط یا موزور بنا مقبول بنا گفتاده یعنی بنا که است مثل حرفیه بنا فعل زمیر فارش حالا این جمله بنا یا بگید سله موصول است یا فعل شرط است علایه حال اون من چیه محتداز حالا یا موصول یا شرط بنا فلن فای فا شهپ جزا یا فای جزا لن یفندد دل ضمیر فایلش که به من برمیگرده یعنی لن یکذ زب لن یکذ زب یعنی تکیزیب نمیشه اون نسبت به کذب داده نمیشه این لن نده که اشبان کرده شده لن یفندام این جمله یا جزای شرط است یا خبر مبتدا اگر من من شرطیه باشه میشه چی جزای شد اگر من موصوله باشه و مبتدا میشه چی خبر اگر من من شرطیه باشه و مبتدا بهترینه که چی خبرش باشه فعلش دکته حالا این واب رو چه بکنیم؟ میگه وا میگیم وا بستگی داره به این که شما من رو چی بگیم؟ اگر من رو من شرطیه گرفتی بهتر وا رو بدید وا استقبال چرا چون جمله حالیه درست حالا جزء خبرش استقباله ولی جمله خبری چی جمله حالیه باید علامت استقبال نداشته اگرچه اینجا علاوات استعمال توی جز اینجا که مسندشه لن اشکالی نیست بله خب بهتر حالا دیگه اینقدر احتیاط کن اما اگر واو رو من رو من محصوله و مبتلا گرفتیم واو رو واوه چی میگیریم؟ حالیه میگیریم و معنا هم خیلی خیلی میشه در هر دو صورتش میشه حالیه گرفته، ولی صورت دوم که محصوله باشه دیگه کامل کامل میشه؟ اعراب بده به مشبه از قبل از فیل و قبل از مبتدا و حالایی که اگر کسی مبنی کند یا کسی مبنی کند این مشبه از را بلن یوفن اون اونو نسبت به کس نمیدید نسبت به غلط بگید نمید. یعنی میگیم اگر تو اینجا مبنی بکنید مثلا هازا یا اومو یان فاوسادری نسید خودیم. یومو در چیه؟ تی دخویی. آزا یومو یان فاوسادری نسید خودیم. چون باشته چیم تا اما اگه یکی قرائت کنه آزا یوم مر مبی برفاد کنه. نمیگیم بالد کرد. آ؟ لان یوفن نه. اما میگیم لغت خودی استفاده میکنیم. لان یوفن نه. این کلمه فن نده. یوفن نده. کلمه گورانی ها. سوره یوسف دیدی؟ فلما فصلت رو قال ابوه موقعی که قافله اینها از مصر جدا شد قافله برادران داشتن پیراهن یوسف رو می قال ابوه حضرت یعقوب گفت انی لعج دویی هم یوسف گفت من دارم بوی یوسف رو می‌فهمم لولا ان تفندوه نه توفنده دو نی لولا ان توفنده دو نی یعنی لولا تفنیدو کنی یا یا موجود بود. اگر شما من نسبت به درو نسبت به خرفت شدن ندید که پیر شده و یه مقدار کند شده ندید من دارم بهتون میگم که آه بویی یوسف داره خب بگم و واقعهواقع قبل فعل معان و الواقع. قبل فعل معان عبارت و واقع قبل فعل معاورن او قبل مکتن قبل نوشت مبتدا، مفتدا به جایفعل قبل مکتدن اعه اون انواقع هم مفول ش الواقع یعنی الی اونی که واقع می شود قبل از فعل مورد یا قبل از مبتدا شما چکارش بکنید اعرابش بدید بجوبه به شکل بجوبه این در بسریگی نزده آقایون بسریها پیش بسریها این طوریه که باید چی کرد بهش اعراب داد بجوبه نحو حازا یومو ینفعو صادقینا صدق هم قبلش داره قال الله فرمود خداوند تبارک و تعالی هازا یومون هازا یومون هازا یومون ینف و صادقی نصف و هازا مقتدار یومون چیه؟ خبرشه یومون و, و این هازا یومون مغوله قول محلن منصول محکی قول مغوله قول ینف او صادقین از صدقه هم ینف او فیلو موربه دیگه ینف او از صادقین هم مفهوله صدقه اینجا مفعول مقدم شده و واجب هم هست مقدم شده چرا؟ چون فائل زمیره مفهول داره اگر سر جاش بیار عود زمیره منجم مترفته رفتی و رضوی میشه یعنی اگه بگه ینف او مثل هم از صادقین هم مثل به تلا ابراهیما رفت خب حاضا یوم حالا آیا میشه اینو رو و هم خوند میگه و جب و زل کوفیونه بنا کوفیین مبنی خوندن این به رو هم بگی اجازه دادن وقتا را قول و فغاد. مسنف قول کوفیین رو هم پذیرفته اما در رتبه دوم فقاد بعد برگشته گفت چی؟ و من بنا فلن یفن ندارد هر کسی که مبنی بخونه نسبت به چسبش نمیدیم نمیگیم دروغ گفتی غلط گفتی فلن یفن ندارد که قرارت ناخره مثل قرارت آقای نافر که خونده چی؟ آزا یومد یمفه استادی نسته مقای یومد نمیگیم لفظم مبنی برفر محلن مرفوع خبر آزای میگیم به چه داره؟ میگه بابا الان شباهت به حرف رو که داره میگیم شباهته چی؟ میگه شباهته افتغاری میگیم آرزیه میگه خب اشکال نداره آرزی هم باشه یه برای پرسیل میکنه همین یه ذره علت بشه برای چی؟ برای من میگه میگیم آخر بعدش پیل موربه میگه خب همین چون بعدش پیل موربه ما گفتیم که اعراب درش تغییر داره حالا اگر مبنیه که بخونه توجه به فعل محرم نکنه و فقط توجه به افتغار به سوی جمله بکنه در این آه میگیم چی؟ اشکالی بعد هم قرائت سنت مرتبه است که نمیشه بگیم آقای نافر اشتباه در قرائت خب ببینید برای فعل مزارش مثال زد برای مبتدام مثال زد گفت چی؟ و قبل فعل موربن او مبتده برای فعل مزاره مثال زده اما برای مبتده مثال نزده یه مثال برای مبتده بنویسید که دیگه کامل کامل میشه و کقولهی و کقولهی و تذکره تذکره تذکره ما تذکره من سلام مام ما تزیک کره من سلام مام.allah هی نه افسر هست تا زی که بکنیم allah هی نه allah هی نه اتّواسلو اتّواسلو دیرودانه allah هی نه. از تواصل و تواصل یعنی به و وز حبیب و محبوب، غیردان یعنی غیر و غریبه یعنی بعید تذکره ما تذکره ما محول تذکره یعنی تذکره لذیب تذکره دوبوم آید سلشتیه افتاده یعنی تذکره یعنی تذکره لذیب تذکرهو تالکون هیمن شعون سلیمان هیمن سلیما و بیان مای ما تذکر رو بکنه. یعنی به یاد آورد آنچه را به یاد آورد در حالی که بیان باشد اون آنچه که به یاد آورده است از امور و کارهای خانم سلیمان این رو رو؟ که رو به یاد آورد کارهای سلیمان رو. هی، فی در آن گامی که وسال دیگه وجود ندارد. یه مدتی از او دور افتاده بود. حالا از توسط لو بیرو دارد. منم باله متفق. و آن زمان ازا از از افتادن اعلام جمله که نه ازع الطل و عل زمو واوش ما چیه واو استینا عل فعل و فاعل یادتونه دو مفعولی هم بود ازا مفعول اول اضافتا مفعول ثانی الا جمله لعفعال متعلق به اضافه بذن الا جمله اضافه میگه اضافه هم اضافه به جمله میشه اما مثل از و حیثو نیست بلکه این فقط به چی اضافه میشه جمله فیلیه الا جمله لعفعاله مثالهو مثالش مثل هن مثل قاله یه قول و فعل میشه چی؟ هن یعنی توازع آلا یعنی توازع هن یعنی توازع توازع کن دلیل و جزاز اضا اعتلا اضافه میشه به فعل شرطش منصوبه به جزای شرطشه اعتلافه زمیر فائلش جمله فعل شرط ازاد جذاب قرینه هون که در این رو جذاب چی شده هرشو. یعنی ازا اطلاق غیرون اگر اولو و برتری و جرن کشی بکنه غیر از تو کسی در مقابلت کسی تکبر و غرور رو نیشه تو چی کار کن تو در مقابلی تو نبا تماس توازد تو متوازد باش شاید اون هم اضاق اطلاق غیرک فخون انت فستو و توازم الان شاید سر چیه؟ اطلاق است که جمله فعلیه است و مضافن علیه اضافه بیادی باید و ارضم او اضافتن ازا الى جمعه لعفعال فقط یعنی چی؟ یعنی بگه جمله اسمیه اضافه نمیشه مثل ای سعود قُلْنَا إِذَا اتْلُوا قلنا إذا اتلا اِعْطَلا رو غلط نوشته با الف بلند میشه از چهار حرفی به بعد ارزا عهتا آم چه وابی باشه چه یائی باشه به شکل ل بگی یا نوشته میشه مصطفا اسطفا اطلاع اِعطلا میشه درست میشه ای توازع ای توازع ازا تعازم و تکبر لقطه ها رو معنام یعنی تو توازع به بده زمانی که دیگری در مقابلت تکبر و نمایی میکنه خودشون تعازم و تکبر البته به شرط که کمک به توازع تو کمک به تکبر او نکرده باشه بنده با میشین چی؟ اعانه برگناه کردیم ازا داریم توازه اون مقل متوازهینه و تکبر اون مقل متوازهینه خب و اجازه الاخفش و کوفیون و اجازه دادن جناب آقای اخفش و کوفیدی ها اجازه الاخفشو اخفش پس معلومش هست بسیه هست اجاز اخفش و الکوپیونه وقوع المقتدع بعدها اجازه دادن که مبتدا هم بگید بعدش بیاد یعنی گفتن لزوم نداره که ازا بر جمله فعلیه داکر شد ایشون که گفتش فقط به جمله فعلیه پس می معلومشه قول کفیونه اخفشو قبول نکرد وقوع المقتدع بعدها ولم یوسما آه آقای ابن عشان میگه همچین چیزی رو ما نشیم، ندیدیم که بر سر جمله اسمیه در میاد اون که بر سر جمله در اسمیه در میاد ازای خجایی هست یه نفر میگه آقا این پس چی آقای قرآنه و نحو از از سما و پس چی اینو چی میکنی میگه و مانند از از سما و رو ما از باب چی میدونیم از باب و این اهدون به نرمشتکین استجارکه می دید یعنی میگیم چی؟ میگیم این از سما منصوب و مرفوع است به یک انشاقت مقدر که این انشققت چی کارش می تفسیرش می‌کنه. همونطور که اهدون رو میگیم فائل است به یک استجارکه مقدر که این استجارکه چی کارش می کنه؟ استجارکه این از تو پناه بخواه اگر اهدی از مشتکین از تو پناه میان میرن مشکلی سفت به اهدون استجاره کرد طلب جوار از تو کرد و عجر رو جواب شده پس چکار کن بهش پناه ردش اینجا اگر آقای ملا جلال گوش گوش اگر ملا جلال بخواد با این که چرا از سما و این شب اسم اومده جواب بده به کی به اخفش و کفیگین این نوع جواب دادن درست نیست چون برگاشته گفته چی؟ گفته اونا می گفتن بعد از ازای شرطیه یعنی بعد از عدات شرط کنند چی میاد؟ محتدا میاد بعد گفتن ایشون گفت نه نمیاد بعد اونها گفتن پس از از تماه چیه؟ ایشون گفت مثل این حد و مدنمشت که نستجارک هست میگن خب این حد و مدنمشت باز نستجارک چیه؟ از نظر ما مبتداست یعنی تکدیر اشکال شد باز همون سوال اولمون اول رو آیه افشو کفیم میگن در این دوبامی هم میکنیم میگیم به چه در این اما اگر نظرش رو بخواد نسبت به ما بگه یعنی بگه ما که اصلا کاری نداریم به اینها میگیم شما که میگی که بعدش اسم نمیاد و بعدش باید پیدا شرط بیاد اگه یه موقع اسم پیدا شد چه گونه مذهب خود میگه ما مذهب خودمونه اینطور تطویر میدیم که اگر یه موقع اسم برداش اومد اون اسم را قبلش فعلی رو به غرینه و تفسیر تقدیر میگیریم یعنی و نحو از از سماه شفت منبا به ان اهدون من المشتکین استجارک اندنا پیش ما اینطوریه حالا اونا مخواد مبتدا بگیرن جای و ما میاییم برای عدات شرط چی تقدیر میگیریم فعل شرط تا اینکه همه هنه ی دارایی چی باشن؟ فعر شرط باشن. هم به غالبش میکنیم. عدات شرط فعر شرط میخوان و ما فعر در قیمت قرص میشیم. و سانیان با تقدیر گرفتن ما ازای فوجایی صد درصد از ازای شرطیه چی میشه؟ جدا میشه. ازای فوجایی فقط به اسمیه داخل میشه. ازای شرطیه فقط به فعر. پس این نه میخواد بگه و نه و از از سما و این شرطت منباب این احد و من المشتکینه که این در این ما چی میگیم؟ در ازا هم همین میگیم در این اگرچه این حرف شرطه ازا چیه؟ اسم شرطه ما در عضاعت شد در رئیس که این شرطی است، این اعتقاد داشتیم که بعدش باید بیا اگر اگرم اسمی آمد باید یک فعل مقدر بنابرای تفسیر میکردی اینجا من کار میکردی و نه باز ما از آقای ابنشان سوال میکنیم میدیم حالا اگر یه موقع فعل نبود چیکار کار میکنیم مثل این مثال و نه بود ازا باهلی یون تحت هو هنزلیتون لهو ولدون منها فضاکل مزرهو اینو چی کارش میکنیم این ازا باهلی یون تحت هو هنزلیتون اینجا که ظاهرن مثل از سما و بعد بعدش فیلی نیست مثل این عهد و ملن مشرکی که بعدش فیلی نیست که شما فیل تقضیق بگید اینجا چی کار میکنی اینجا مجبوری بگی با هلیون مقدس دیگه یه موردم قبول کنیم بقیارم باید قبول کنیم میگه اینجا هم با راه داره اینجا میگیم کانه در تقضیق و کانه آه در تقضیق مشکل هم بگید اضافه باهلیگان تحت انزلی هنزلیگتون باهلیگان یعنی رجلون باهلیگان منصوبه به قبیله باهله که از هسترین قباهله یعنی از قباهله که شعنیگتی در نزد عرب ها ندارید تحت انزلی هنزلیگتون هنزل قبیله شریفیه بزرگیه میگه اگر یک مرد باهلی ها در اختیار داشته باشد زن هنزلیگی رو یعنی ازا رجلون باهیلیون تحت او امرهتون هنزلیگتون اگر یه مرد باهیلی در اختیار و در عقد ازدواج او باشد زنی هنزلیگه لهو ولدون ها و برای این من بچه هم از این زن حاصل باشد بچه هم از این زن داشته باشد فضاکل مزر روی اون بچه چیه؟ مزرعه مزرع به کسی میگن که مادر شریفتر و کریمتر باشه از به بردش و عصیبتر باشه از به دردش میگنم مزرعه من کانت امهو اشرف و اعظم و اکرممه حبیر بسه که مادرش شریفتر تر و ازین و کریم تر است، اصیل تر است، پدرش اینا مذلل میگه اگه یه باهری یه زن انزلی یه بگیره بچه‌ی اونها چی میشه؟ مذلل میشه. یعنی فزاکل مذلوع یعنی فزاکل ولدو المذلوع. زاکم مبتدا المذلوع طاولش. الف لام دارم آورده المذلع یعنی فقط فقط و فقط این طوره. زاکر مزد تحت هون خبر مقدمه هنزریتون مبتده بگید محفر. این جمله خبر اون کانه مقدره خبر اون چیه؟ کانه مقدره چون باهیدیون چیه؟ اسم اون کانست دیگه یعنی کانه باهیدیون تحت هون هنزری لهون ولدون منها لهو قبر مقدم ولدون مبتده معخر منها صفت ولد این جمله نعت است یعنی ازاکان باهلیون لهو ولدون من هنزلیت برای او ولدی باشد از یک هنزلیه درود شد باهلیی که بچه دارد از یک هنزلی و زن هنزلی دارد فزاکل مزرع و او مترر انسان فزاکل مزرع این جمله جزای ببین شرط برای اسم میگه اینو چطور ترجیب کنیم میگه اسم کنه علا ازمار کنه میگه این نظم ما برای اینکه سیاق باب درست در بیاد با تقدیر گرفتن کنه درست میشه علا ازمار تقدیر کنه میگیم اگه میشه کانه تقدیر میگیرد بله کانه رو تقدیر میگیرد مشکل هم نداره دیگران هم تقدیر جایی که ما به فعل داریم و فعل از جنس نداریم چی تقدیر میگیرد؟ کانه کما ازمردهیه کما ازمردهیه و زمیر و شن هیغو همانطور که تقدیر شده از هیه هیه یعنی چی؟ این کانه و زمیر شن چون مخواست زمیر شن رو کنه به جای زمین داخل ازمرد مجموع شده دیگر رو کارش کنه تکرارش <تصفح> کنه کما ازمردگیه و زمیر و شن در قول این و نبعه تو اینو تو بابست مفتولی ها همیشه رو کنه و نبعه تو لئی دار ارسلت به شفاعت بحلا نفس و لیلا شفی و حال نوبه تو الان اینجا چند مفعولی استفاده شده؟ خواهبه؟ خواهبه لیلا مفعول سانیه که در عطی بوده محتدا بوده ار به شفاعت نهلیه این جمله مفعول سالسشه علمه و عرق سه مفعولی بودن دیگه چند تا فیل مثل انبعه حدسه خبره نبعه اینها ها فیل هایی هستن که ملحق به علمه و عرامسی استفاده عبودی ارسلت فیل زمین فایلش که به لیلا میخوره به شفاعت متعلق است به ارسلت الگه شفاعت الگه متعلق است به ارسلت ارسلت به شفاعته و حلا حلا برای چیه؟ تحزیزه نه؟ اگر نسبتو به آینده باشه یعنی من میخوام شما در آینده درستون رو بخونید با شدت هم میگم با طلب میگم حلا تقرعو درسته اگر در گذشته نخوندیم و رد شدی و من از این مطلب ناراحتم میگم حلا قرعته درسته اینجا میشه برای چی؟ برای توبیخو هم این هم همین رو میگه. میگه ما با خبر شدم که خانم لیلا شفی فرستاده برای ما فحلا نفس لیلا شفی بود. یعنی فحلا کانه نفس لیلا شفی بود. چرا نفس لیلا شفیش نشد؟ کانه بعد از حلا اومده و بعد از حلا حتما باید چی بیاد فعل بیاد چطور اینجا واجب فعل بیاد ما ترمیل کانه میکنیم در اون بالایی هم ازا واجب فعل بیاد پیشه ما پس اون رو هم برایش چی دردیر میگیریم کانه درست فحلا کانه نفس لیلا شفی اوها کانه زمیر شن میشه اسمش نفس و لیلا مبتدا شفی اوها چیه خبرش. و شفی بیرون گفتم مثل از کنتم مقلیلن اندون قدیلون وزن فریل هست لذا دیگه تایتانیس بگیر نگه فرموزکر مهمن هست مفتر بسیدن بگیر شفی او نکته ای که اینجا از اینه که اینجا بهتره که درسته که آقای مولا جلال گفته کما ازمرد هیه و زمیر و شن به نظر من اگر میگه کما ازمرد هیه و زمیر و قصصته چی بود؟ بهتر بود و آن کانه نفس و لعیداشتی ها چون عمده در جمله بچیه نفس است که مهندنس اگر عمده تو جمله بچی باشه مهندنس باشه بعضی حتی واجب میدونن زمین رستا حالا اگر واجب ندانیم قطعا عالی تر بودنش رو هیچ کسی نفیه بگیری او شعر بالاییش هستش که گفته کانه هزف شده ها گفته علا ازمار کانه خب بعضی گفتن کانه حضب شده بعد مجبور شدن بگن باهیلیون میشه اسمش تحت هو هنزلیگتون خبرش و دهو ولدون منها صفت باهیلی همونطور که من ترکیم کردم ولی معنا به خوبی کامل در نمیاد میشه هنگامی که باشد مردی هنگامی که مردی زن هنزدی داشته باشد مرد باهلی لهو من منها و این مرد باهیلی زفتی داشته باشه بچه داشته باشه از اون زن فضاکر مسلم ولی اگر در همون شعر بالایی هم ما کانه با زمیر چند دقدیر بگیریم یعنی ازا کانه بعد باهیلیون بشه چی؟ مبتدا تحت هو هنزدیتون بشه چی؟ زفت باهیلیون لهو من منها بشه خبرش این جمله بشه خبر کانه با زمیرش هم اشکالی هم توش نیمید از به یک شکل لر اشکال هم نداره لذا در این شعر هم کانه و زمیر مقدر باشه مثل شعر پایین ممکن است و بی اشکال و حتی گفته هم شد فرعون ما خلاصه اضا رو خوندیم. گفتیم که اضا اضافه میشه به چی؟ به فعل شرط خودش و منصوب است به جزایش حالا یادتون باشه مشبه از داشتیم یا نداشتیم؟ بله خب قطعا مشبه ازا هم بگید داریم یعنی اگر من الان برگشتم گفتم که سعجی و سعجی و هینه یجی و امرون سعجی و هینه یجی و امرون یعنی چی؟ در آینده من خواهم اومد انگامی که ام بیاد حالان این هینه به معنای چیه؟ ازاز، مشبه ازاز زرق است، زمان است، موهم است برای زمان و مستقبل است آیا؟ آیا، حالا نکته اینجا دوتا سوال هست آیا مشبه ازاز همچون خود ازاز باید فقط به جمله دریه داخل شود و همزمو ازاز ازاز فتن جمله لفتان آیا مشبه ازاز فقط باید به جمله؟ بهلیه در بیاد یا نه قطعا باش بگیم بری چرا؟ چون مثل مشبه از مشبه از میتونست به جمله اسمیه در بیاد میتونست به جمله بهلیه در بیاد حالا مشبه ازا فقط به جمله این سوال اول بخوانیم فرعون مشبه و ازا مشبه ازا میگه این فرعه یعنی چی؟ یعنی وقتی مشبه از رو مسنده به ما گفت ابرمالک مشبه از رو کاملا گفت از جهت دخولش واجوه اسم یو و واجحت و اعرابو بنا همه مباحثشو کرد دیگه مشبه از رو اگ... مشبه ازار رو اگر دیگه به خاطر چیه به خاطر اینکه اینم هم مثل همونه از گوی اون بتونید تو اینو کار کنی ریاض مشبه و ازار من اسماء زمان المستقبل از اسماء زمان المستقبل چه ازار؟ مثل خود چیه ازا یعنی چی یعنی بچه‌ش اول یعنی لا یضاف الا ال جمله ال یعنی اضافه نمیشه اونم مگر به سوی جمله فیلیه فیلی. قاله هون پی شرح کافیته میگیم این ها میگه مصنف خودش اینو گفته در کتاب شرح کافیهش میگیم مصنف تنهایی گفته میگه نه نقلن یعنی ناقلن یا نقلن یعنی منجهت نه نقلن انسیبه در حالی که داشته اینو نقل میکرد از آقای کی؟ سیبه مستحسن او قاله استفال برای گفتم یک زمانی با استفعال برای چی میاد؟ برای شماردن چه استصفه دیروز گفتم استصفه تو کرد یعنی عدد تو کرد سبی یا من تو رو بچه چی حساب کردم؟ استحسنه ها یعنی عده ها حسنا نیکو شمارده هست میگه و این قول رو که از سیبه و نقشده استحسنه هو. خیلی هم نیکو شمارده بشه و استحسنه هو. و قاله اما بعدش برگشته اینطور گفته گفته چی؟ لولا ان لولا ان المسموعه ما جا عب خلافه این لولا لولا یه امتنایی غالبی هست دیگه لولا ان المسموعه ما جا عب خلافه این موجودان این انم میشه مفتدار موجودان میشه چی؟ فبرک اگر برخلاف این حرف شنیده نشده بود ها؟ جواب رولا افتاده یعنی چی؟ لکان قولن سوابا قول بسیار حرف سی و حرف نداشت آدی میشه. اگر چی برخلاف شریده نشد این منر مسموع خبر مقدم انده است ما اسم شد. فقط اسم و خبر جایی که ظرف و جار و مجرور باشن می انما مع الاسي اصرا يسو ضرب ان فيزا مکر الهبرتن هر جن لو لا ان منر مسموم ما جاء به خلاف اگر بر خلافش نرسیده بود حرفش حرف نشد لکان قول او قولاً سدیدا قولش بسیار سیاق قول محکم یعنی گفته اینکه اومده هزار و قیاس کرده بر اس گفته چطور مشبه از فقط به اسمی و فعلیه میتونه داخل این هم فقط به فعلیه میگه این حرفش خیلی خوب بود اگر برخلافش شنیده نشده بود یعنی برخلافش ما شنیدیم که چی؟ که مشبه اضافه به جمله فعلیه فقط داخل نشده بلکه به جمله اسمی هم داخل شده میگیم کجا؟ کجا همچین چیزیه؟ میگه قبولی حالا مثل قول خدای تهالا که گ اون هوم جدای از یومستا هوم مبتداز یومه هوم بارزون این یومه هوم بارزون الان هوم مبتداز وارزونت چیه؟ قبرشه میگه این یوم الان مشبه چیه؟ احزاست میگه به چه دلین مشبه احزاست؟ میگه به دلینه که قضیه قیامتو میگه. که اونها بارز میشن؟ ظاهر میشن؟ میگه روز قیامت میگه وقتی قیامته مشبه ایزه یا مشبه احزاست به ازاظ به آینده است انتها انتها کلامی که مصنف در کتاب شرحه کافی اش گفته این کلام برخلاف قول سیببه شد سیبوی گفتو فقط به جمله وی دیگه دیاسن علازا به جهت دیاس بر ازا این میگه نخیر بلکه به جمله اسمی هم داخل شده کلام برخلاف درست انتها میگه و عجاب بلد و رو آنها بچش اومده از این چیکار کرده جواب داده بچه مصند ابن نازم که شرحی هم بر کتاب پدرش دارد بیاند عجاب ولدهو انها جواب داده از این آیه پسر آقای ابن مالک به پدرش جواب داده که بابا به انها مما نزد رفیه المستقبل و وقوعی منظره در مازی سهی هم گفته گفته پدر این یوم هم بارزون در مورد قیامته و قیامت چون محقق الوغوه نازم منزله چی شده؟ مازی شده مستقبل محقق الوغو در حکم مازی است پس این الان یوم هم بارزون مشبه ازا نیست بلکه مشبه چیه؟ مشبه ازه و مشبه از گفتیم برسن جنبه ازمیه و فعلیه هر دو داخل میشه اشتباه کردیم و هینه ازن فا اسم و زمان به معنی ازا پس در این هنگام که مستقبل به معنای ماضی شده اسم زمان در این به معنای ازا نیست بلکه به معنای چیه؟ و وحیت وضاف و علم جملته و این از هم اضافه میشه به دو جمله مشفهش هم اضافه میشه به دو جمله درسته؟ جمله اسمی هم میشه. مثل چی میمونه؟ مثل قال الله و تازا یا اومو یان و استادقی نه صدقه هم خودمون این جمعه رو برای چی مثال زدیم برای مشبه از در صورت که برای قیامت بود اگه بهمون بگم چرا اونجا مشبه از شد بگم چون مستقبل نازل به منزله ماضی شده بگم به چه داریم میگیم قبلش میگه قبلش بگه قال الله قال الله قال لفظش چیه مازی ها قال الله مقوله قاله قال قاله این نکته اول تمام شد مطلب اول تمام مطلب دومی که میخواد بیا قیاس کنه میگه اینه آیا مشبه ازا مثل مشبه از میتونیم بگیم هم معرب میشه بخونی هم مبنی درسته؟ ابن او ما که از قد اجریان حالا بگیم ابن او ما که ازا قد اجریان یعنی شباهت افتقاری عارضی رو در نظر بگیریم مبنی بخونیم شباهت افتقاری رو در نظر نگیریم علل اصر بگید مورد بخونید بعد هم بیایم بگیم وقت در بنا مطلب به فعل گنیا اگر اضاف بعدش فعله بگید مزاره آمد مشبه اضاف یا بگید مبتده آمد محرم. اگر بعدش فعل مازی اومد یا مزاره مبنی اومد. چیه؟ مبنی بیندنش میگه اون احکام تفصیلی که اونجا قیاز کردیم مشبه ازار و به ازار و گفتیم آیا اینجا میشه بگی یا نه میگه ابن نشان گفته قیاز کنید و بگید نیچه اشکاری هم دوش نیست و قار ابن عشامن ولم عرمن سر رهم میگه کسی تصریح نکرده به انم, مشبه ازار به انم مشبه ازار که مشبه ازار کسی تصویر نکرده که مشبه ازار مثل مشبه ازار یعنی چی؟ یعنی یوبنا و یعرم به تفسیل سابق مبنی میشه مورد میشه با تفسیری که ما گفتیم در مشبه از میگه و رو علیه از قیاس رو میخوره به چی؟ مشبه از قیاسه علیه تشمید کردن مشبه از رو به مش... مشبه از رو به مشبه از ظاهرون بگه ظاهرم از مادیه به هم برم تشمید و قیاسه رو میخوره به مشبه ازان علیه بر مشبه از ظاهرون و منعو و از همین است یعنی از مشبه چیه ازاز ها و از مشبه ازاز مشبه ازاز ابن هشام اشتباه کرده و منو، یعنی و از مشبه ازاز گفتم ما اینجا قیاس کردیم یعنی مشبه ازاز مورد شده چرا چون اضافه شده به فعل مراد میگه و منو، یعنی از مشبه ازایی که اضافه شده به فعل مراد به جنبه ای که فعل مراد داره و مراد شده میگه ومر گفت هاذا یوم و و صادقین نسیت گفت میگیم چرا میگه لا هنل مراد به این المستقبل میگه زیرا مراد به این چیه مستقبل قیامت پس قصد شده چی مشبهه بگی احسان امتحا کلامی کی ابن شام ابن شام حرفش غلط نیست اما مثالش چیه غلطه حرفش که اومده گفته مشبه هزارو میگیم مثل مشبه احزه میتونه مورب و مبنی بشه قیاس میکنیم حرف خوبیه اما مثالی که زده مثال مشبه ازه اینجا مستقبل محقق قلقه نازم به منزله مازیست میگه قلق قد تقدمه نقلن همون میگه من جواب میدم به ابن شام که گذشت نقلن همون به جهت نقلی که ما از آقایون ابن ناظم و ها کردیم رو بهی علا مشبهه از تقدمه فایدهش الاستدلالو اون نقللا حال است از برای استدلال یعنی منقولا به معنی اسم مفعوله بلکه قد تقدم منقولن انهم الاستدلالو گذشت در حالی که نقل شده بود از ایشان استدلال کردن به همین قول خدای تعالی بدی فراموش شده فراموش به ای یعنی چی یعنی لعنهو بماذ زلفیهر مستقبل و لتحو به بحوری منزلتل ماضی زیرا این از اون مستقبل که نازل به منزله مازی شده میگه اینجا تازه یه چیز بالاتر هم داره و باز توی یوم همون بارزون کنیم قیامت اینجایی این ای قرینه لفظی هم داریم ولا سیرگما ای اول ای قاله به لفظ مازی لا سیرگما که در این قول خدای تعالی اولش چی داره؟ قاله داره قال الله که به لفظ مازی است ثابت میکنه که قیامت به منزله مازی است و الله